لت را توی خیابان بزرگ مهر پارک می کنم کیپ تا کیپ خیابان ماشین پارک کردند هتل باید خیلی شلوغ باشد نزدیک هتل که در کافش بر روی همه باز است چند دانشگاه هم هست کافه هتل هم پاتاق دانشجوها خیلی وقت از نیامدم هتل البارس به نگهبان سلام می نگهبان در را برایم باز میکند. از راه رفتن روی فرش قرمز زیر پام احساس عجیبی به هم دست می دهد. دارم به مراسمی تشریفاتی وارد می شود. تشریفات محض توی لابی کوچک هتل چند خارجی موبور نشستند و با صدای بلند به زبانی که برایم آشنا نیست حرف میزنند. مردی از آسانسور پیاده می شود و به سمت خارجی ها می آید. و هم دیگر دست می دهند. هنوز نفهمیدم چه زبانی است کاش زبان این آدمها را میفهمیدم و میرفتم باهاشان گرم میگرفتم تا زمان با سرعت بیشتری بگذرد مردی که از آسانسور بیرون آمده نگاهش لحظه‌ای به نگاه من گره میخورد چشمهای سبزش مثل چشمای یک بچه گربه است یاد چشمای سامان مییفتم حامد نجات تو امروز با ندا حرف میزنی حرفهای حساسی. میروم داخل کافه‌ترییا. سمت چپ کنار گلخانه بنشینم به بهتر است یا میز کنار بالکن؟ حق انتخاب دیگری ندارم. بقیه میزها پرند. دسته هیچ یک از دانشجوها سیگار نیست و این البته جای تعجب دارد. صندلی را بیرون میکشم و پشت میز کنار بالکن مینشینم از اینجا می توانم هم را هم ببینم. مجبور شدم ماشین را کنار آشغالدانی بزرگ سیاه پارک کنم. باید حرفام را با ندا تا ساعتی که کامیون جمع وری مکانیزه زباله با چراغ گردان زرد رنگش سر می رسد تمام کنم. کامیون مکانیزه که بیاید خیابان هی روشن و خاموش می شود. چند است. هفت و هفت دقیقه. ندا گفت از در دانشکده علوم میآید. از در علوم تا اینجا نباید سه چهار دقیقه بیشتر راه باشد. خیلی وقت از توی دانشگاه تهران نرفتم. آخرین بار چند سال پیش بود. می‌خواستم بروم کتابخانه مرکزی درباره‌ی بنیاد حمایت از مادران که قبل از انقلاب فعال بوده چیزهایی بخوانم. همان بنیادی که مادرجان سال‌ها در آن کار می‌کرد. بنیادی که ریاست عالیش بر عهده فرح بود. از پل کتابخانه مرکزی گذشته بودم و چشمم افتاده بود به ساعت بزرگ دیوار کتابخانه که از کار افتاده بود و انگار تمام ساعت شبانه روز ساعت پنج را نشان میداد. معرفی نامه یکی از استادان هنرهای زیبا را به مسئول کتابخانه نشان داده بودم و لاولای فیش ها وارشیف ها و کتاب ها شروع کرده بودم گشتن. یادم نیست دقیقا چیها دستم را گرفته بود کلی مطلب بود و بیشترش هم تکراری اما چیزهایی که سالهای سال نقل محفل مادر و دوستانش توی ویلای دماوند بود همکاران سابق و پوکر بازان فعلی از حمایت از مادران به نفرت از جمهوری اسلامی رسیده بودند و نفرتشان را ناخداگاه در محکم کوبیدن کارت ها، وقتی که دیگر ژتونی برایشان نمانده بود نشان می دادند. پوش به سران حکومتی لابلای شوقی و هر رایج های رای جپوکر من و بچه دیگر که تعدادشان کم بود توی عیات ویلا بازی می کردیم. در چهار ده پانزده سالگی هم هنوز سرگرم بازی های دوران مدرسه بودیم همیشه همینجوری بودم چند سال عقب تر از سنم آب می‌گردد و چاله را پیدا میکند. می قرار است امروز با ندا حرف بزنی؟ نتا چند سال است و است؟ این دقدقه قدیمی است و باید باش کنار آمد از آن چیزهای ناگزیر زندگی است کارم در کتابخانه مرکزی خیلی زود تمام شده بود دوباره از پل گذشته بودم خیابانهای داخل دانشگاه از دانشکدهی به دانشکده دیگر می رسیدند برد دانشکده ها، اخبار شب شعر همایش های تخصصی تعسنها مسجد دانشگاه تهران با آن معماری عجیب و سقف فلزی نماز جمعه و باغ روبروی علوم پزشکی و آن گود برداری نیمه کاره ندا گفته پردیس پایین کار دارد حتما وقتهایی که از دانشکده فنی پایین بیرون میآید با دوستهاش می‌روند توی باغ می‌نشینند و به دانشجوهای دندان پزشکی که با روپوش سفید از جلوشان رد می‌شوند متلک می‌اندازند. دوران دانشجویی دوران خوبی است. بهترین فرصت برای سبک, سبک مغزی است. سبک تهران و نیویورک ندارد. همه دانشجوها دیوانه های مطلوبی هستند که دوست ندارند بدانند. دارند چه می‌کنند. جالب است که ندا، به آن همه پسر هم دانشگاهشبیاعتنااست توی نیویورک هم دانشجوهایی بودند دو تعدادشان هم کم نبود که تفریحات عاطفیشان بیرون از دانشگاه بود ندا دارد میآید نگاهش کن روسری ترکمنی سرش کرده است مگر از دانشگاه نیامده پس مغنعه و کود پشتیاش کو حتما رفته خانه لباس عوض کرده آرایش مله داد از این فاصله نمیتوانم خطوط صورتش را درست ببینم. پیرچشمی برای اکاس ها بزرگی بزرگیست. اما امشب چشم نباید احساس پیری بکنند. چشم های مردی میان سال تا چند ثانیه دیگر به چشم جوان دختری جوان نگاه می کنند و دهان میانسال سال مردی میان سال کلماتی را که حالا حتی یکیشان را هم نمی‌دانند به گوش های جوان دختری جوان میرسانند. ندا هم مثل من به خارجی های توی لابی نگاه می کند مرد چشم سبز حتما به ندا هم نگاه می کند. ندا یک دفعه برمیگردد به پشت سرش. دربان هتل میآید نزدیک و چیزی به ندا میدهد. حتما جلو در وسیله چیزی از دست ندا افتاده و دربان آن را برداشته تا به او بدهد. میآید داخل تررییا دوربررش را نگاه می کند تا پیدا می کند. من را می بیند و برایم دست تکان میدهد. بلند می شفم. با نداد دست میدم و صندلی وغل دستم را برایش بیرون میکشم. پاکت سیگار و زیر سیگاری را لب میز میبرم تا دا تواند کیف زنانش را روی میز بگذارد. میزهای کافه کوچکند و دستهای آدم روی آن آزاد نیست. آدم ناچار است سندلی های سبز و زرد کافه را عقب بکشد و دست به سینه حرف بزند. پای ندا هی تکان میخورند استرس دارد. سیگار تعارف می‌کنم. نه ممنون. چه خبر دانشجوی جوان؟ سلامتی، از استاد نجات ما چه خبر؟ آتولیات، آتولی, آتولی مان دست و نجات هم نجات. چه خوب میخندد من هم میخندم سویچ شورولت را رو از روی میز بر برمیدارد و دور انگشت اشارهاش میچرخاند آن ریدینگی که گفتم آوردم میخواهید بخوانید بگذار برای سر کلاس دستهایم عرق کردند و دمای بدنم دارد به مرز چهل درجه نزدیک میشود دماوند سرد است دستام توی دماون درق نمی کند. آدم اختلالات ارسی را کنار دریاچه تار فراموش می کند. اختلال ارسی دم دریاچه از آدم می پرد بیرون و می رود به کار و زندگی خودش دخترم دستای خیلی قشنگی داری دخترم؟ اینی گر چه بود که من گفتم؟ این کلمه دخترم از کجام هم در مردی که فکر کن وقتی حرف میزنی تب چهل درجه الان آتش میگیری و جز میشوی چرا به ندا گفتی دخترم؟ ندا الان از حال میرود ندا الان قش میکند ندا رو کشاندی اینجا تا به او بگویی دخترم؟ دیلا گفت حرف دلت رو بزن اما نه اینجوری چند دستمال کاغذی از توی جعبه میکشم بیرون و با عجله توی مشت هم مچاله میکنم بس کنید این تاریخ را لعنت یا ندا از در علوم با شوق و زوق آمده سمت هتل دل توی دلش نبوده شاید جایی میان ابرها بوده ولی نه به خاطر تو به خاطر شور و نشاتی که توی سرش داشته تو حق نداری خوابهای نقره یه کسی را با یک کلمه ازش بگیری و همین الان گرفتی نشنیدی گفتی دخترم شنیدن دخترم از مردی که به هر دلیل دوستش دارد جنایت است قتل عمد است نزد است یک سیلی توی گوش خودت بزن به چی بگو یک کارد بیاورد و صورتت را زخم و زیلی کن خودزنی کن بگو ببخشید و بگو منظورت این نبوده ولی آخر منظورت همین بوده نده ها تو نباید سیگار بکشی دخترم سیگار برای سلامتی ضرر دارد روی پاکت سیگار را بخوان سیگار عامل اصلی سرطان است لیلا که سیگار نمیکشد قلبش خراب شده چه برسد به تو سیگار را رو ناشیانه روشن میکند و با لحن عصبی لبفا میکند نباید می اومدم اینجا خانوم جاهد با شما حرف زده آفرین دختر باهوش لیلا با من حرف زده چون اولش تو با لیلا حرف زدی ریاضیات مغز آدم را راه می اندازد. تو دانشکده فنی درس میخوانی و زود همه چیز را میگیری سرم را پایین انداختم و دارم کفش ندا را که بغلش نوشته کاتر پیلار تماشا می پایه های سندلی عقب می روند و صدای کشیده شدن صندلی روی سنگ می آید. از غیژ غیژ سندلی مورمورم می شود. پاهای ندا تکان می خورند. پاها حالا استاده سرم را بالا می آورم. ندا کیفش را رو از روی میز برمیدارد و میاندازد روی ساعدش. رویش را رو برمیگرداند تا برود ولی هنوز نرفته، پاش به پایه میز گیر می‌کند و تعادلش را از دست می‌دهد و میافتد روی زمین. چه افتضاحی! تقصیر من فلان فلان شده است. وسایل توی کیفش پخش می‌شوند روی زمین. زیپ کیفش را نبسته بود. همه نگاه نگاهمان می‌کنند. بلند می‌شوم تا کمکش بکنم. کنار ندا سرپا می نشینم و یکی یکی وسایلش را جمع می کنم موبایل، دفترشه، کیف آراغش، کیف پول آینه کوچک ندا را که پشتش گلدوزی شده دوی دستم می گیرم گوشه آینه لب پر شده است آینه را سمت ندا می گیرم ندا خودش را جمع و جور می کند دستم را دراز می کنم تا بهش کمک کنم از روی زمین بلند شود دستم را پس می زند وسایلی را که تو دستم است از من می گیرد و می ریزد تو کیفش و بدون خدا می رود سمت در تریا. دنبالش می دوم رو مرد چشم سبز به هم می رسیم ندا خواهش می کنم چند دقیقه صبر کن معذرت میخواهم ندا برمیگردد می, خواهم. ندابر می گردد و نگاه هم می کند چشماش خیزند. مرد چشم سبز دیگر نگاهمان نمی کند گاشیم سر میز قبلیمان نشسته ایم یادم میآید از آتلیه که بیرون می آمدم، از یخچال یک پرتقال درشت برداشتم و توی جیب کدم گذاشتم پرتقال را از جیبم در میآورم این هم برای یاشتی ندا می خندید نبودیم استاد غرق نه دلخوری دلخوری که نه اون اون بست ندا ادامه نمیدهد. پرتقال را از دستم می گیرد. به مرد کافه چی که دارد لیوانها را روی رف بالای سرش میچیند نگاه می کند. ندا با دست اشاره می کند برای سفارش گرفتن بیاید کافه چی به ما لبخند می زند و با چشمهاش به مردی اشاره می کند که و شلوار سرمهی پوشیده و از اینهای کتش خط سفید دارد دستم را بالا میگیرم تا مرد سرمه ما را ببیند مرد سرمه با چیزی شبیه کلاسور که حتما منوی کافه هست میآید سمت میز ما من که چای و کیک من هم منو را هنوز میخوایید؟ بگذارید باشد شاید حواس بستنی کردیم ندا حرفش را ادامه میدهد لطفا یک کارت هم برای من بیاورید مرد سرمه ای حرفی نمیزند و میرود. ندار رو میکند به من. حواسم نبود حامد. خودم توی کیفم یک چاقوی زامندار دارم. توی سرم صدایی مثل آجیر جنگ میبیجد. حواسم نبود حامد. حواسم نبود حامد. ندای این حامد را به تلافی آن دخترم میگوید. زنها، یک بخش استراری انتقامگیر در وجودشان دارند که در مواقع لزوم آن را به سرعت به کار میاندازند. یک یک مساوی: ندا اینجا رینگ بکس نیست. البته حالا میخواهم بلند شوم و برایت دست بزنم. ضد حمله خوبی بود یا پرکات سنجیده واقعا همینم مانده است. سر چهل سالگی کتک خوردن زیر دست و پای ظریف دختری 20 ساله این نسل نوظهور چه بخواهد چه نخواهد آمده دنیا را تکان بدهد. عاشق استاد انگلیسی شدن و دلکندن و انتقام گرفتن در کمتر از یک دقیقه دختر مهندسی و عمران را بگذار کنار برو از این کتاب موفقیت در 20 دقیقه بنویس چرا این همه وقت تلف کردن؟ چرا بیست دقیقه؟ فقط یک دقیقه چاغوی زامندار به حرف میآیم. چاغو دیگر میخوایی چکار؟ برای پرتغال پوست کندن حامد پرتغال پوست کندن را که میگوید میخندد هی hey, باید به من بگویی استاد نجات صدام را نمیشنوی؟ صدام دارد از تایه چاه در میآید خب در بیاید. باید گوش ها تیز باشند باید گوش برای شنیدن صداهای خفیف داشته باشی باید قدرت صدا در فیزیک چی بود؟ باید صدای کمتر از آن واحد را هم بشنوی به من بگو استاد نجات باورم نمی شود دو کلمه بتوانند بار یک گفتگوی طولانی را به دوش بکشند حق دارم جا بخورم حق دارم همین الان بلند شوم بروم به سوئیس ناموجودم یک بکسور بازنشسته با بکسوری جویای نام در بیفتد از این بهتر نمی شود. این جوان ها چرا پی هماسه می گردن. من افراسیاب نیستم ندا فقط چند سالی لیلام را گم کرده بودم پرتقال را پوست بکن و پوستش را بده به من تا برایت گل پرتقالی درست کنم ندا باید احساس کند که من هم جوانم آن وقت به حرفام گوش میداد. و کل, کل تمام می شود و هر دومان خوش و خورنم میرویم خانهمان. من امشب بر نمیگردم کردم میروم خانه لیلا میخواهم قصه حامد دخترم حامد را برای لیلا تعریف کنم لیلا حتما شاخ در می و از خنده رود و بر می شود حقت بود خودت شروع کردی قصه برای احساس جوانی باید سعی کنم حرفام را در غالب یک قصه به ندا بزنم نه یک قصه معمولی یک قصه مسور باید سعی کنم با عکس ها برای ندا قصه بگویم بداه سرایی با عکس ها شاعرانه است ولی درد ساز و سخت و احتمالا ناممکن باید ندا احساس کند دارد وارد یک هماسه می شود مگر وقتی میخواست به من دل به بازد دلش هماسه نمیخواست. پس چرا یکی توی دانشگاهشان نشد. چه میدانم؟ ولی حق دارم اینجوری خیال کنم. یک، دو، سه، استارت هماسه سرایی. نده، سر برایت قصه ای بگویم. به شرطی که آخرش خوب تمام شود، حامد خودم اولش رو از آخرش بیشتر دوست دارم، دخترم. ولی آخرش قرار است خوب تمام شود. حالا حامد دخترم یک بازی دو نفره شده است دیگر واقعیت نیست، یک بازی دلنشین است از آن المانهای شخصی که رابطه را برای ابد معنا می بخشد مکس می کنم. توی ذهنم دارم تکه های قسم را کنار هم می چینم آمادگیش را ندارم ولی احساس می کنم جور دیگری نمیتوانم حرف بزنم میخواهم قبل از آنکه شروع کنم همه یه قصه یادم بیاید ولی این از محالات است باید بگویی تا به یاد بیاوری و این درست مثل این است که باید لخت بشوی تا بروی حمام باید بداهه آغاز بکنی و بداهه ادامه بدهی تا ببینی که بداهه چه پیش میآید ندا پوست پرتقال را میدهد دستم بی زحمت وقتی قصه میگویی زحمت کاشتن گل پرتغالیت را هم بکش تو هم خودت را آماده شنیدن بهترین قصه دنیا کن استاد من همیشه شیفته اعتماده به نفستان بودم بهترین قصه دنیا خود شمایید به این میگوین اعتراف اوریان من هم میخواهم قصه خودم را بگویم حامد تو هم باید توی قصه اعتراف کنی تو هم باید زانو بزنی و دستات را توی هم گره کنی و بعد دست روی کتاب مقدست بگذاری و اعتراف کنی اما کتاب مقدس تو نامرئی است کتاب مقدس تو همین قصه مصوری است که میخواهی برای این تعریف کنی اصلا مگر قصای مصور را تعریف میکنند پس خلاقیتت کجا رفته برای همین است که میگویم بهترین قصه دنیا احساس می کنم می توانم سخت حرف های دنیا را با ساده ترین کلمات بزنم و این چه حس است. لحظه به لحظه این ساعت را امشب برای لیلا تعریف می کنم امشب محصول مشترک لیلا و نداست و شب خوب حامد نجات است. توی شب خوبت قصت را به گوه حامد نجات ندا اگر می خواهی قصت من خوب تمام بشود؟ باید خیال کنی داری یک آلبوم را ورق میزنی یا یک قصه مصور مثل تنتن و میلو می‌خانی ندا به من که ساکتم نگاه می کند. پیداست مشتاق است قسم را بشنود شروع می کند.